یک تعهد است که انسان مسلمان با خدای عزواجل میکنه ای تعهد مثل یک عهد است که انسان اقرار میکنه و اعتراف میکنه که زندگی 24 ساعته خدا مطابق اینمی کلمه ایار میسازه در این کلمه اول انسان باید کافر شود سپس باید مسلمان شود باید به با طاقود کافر شود و سپس به الله ایمان بیره اگر ما مفصلا این کلمه مبارکه به شکل دقیقش علایده علایده سرزو بحث بکنیم به شکل مختصر ما میخواییم بگویم که لا اله نفی تمام معبودان باطل است در زمان بعثت حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اشکال مختلف مخلوقات عبادت می شدن. کسی ملایکر را پرستش می کرد کسی پیغمبر را پرستش می کرد کسی یک دوست خدا را پرستش می کرد کسی یک سنگ را پرستش می کرد. پرستش به مانای از این است که انسان فقط بگوید که تو خدای ما هستی بلکه هر چیزی که مخصوص خداوند است وقتی را ما به الله انجام بتین اینمی پرستش است سجده عبادت است سجده مخصوص خداوند است رکوع مخصوص خداوند است حاجت طلبیدن مخصوص خداوند است مددخواهی مخصوص خداوند است قربانی کردن مخصوص خداوند است نظر کردن مخصوص خداوند است نفع و ضرر انسان پیش خود تصور کردن مخصوص ذات خداوند است بناهن اگر ما اینمی امور هر کدامشه بغیر خداوند به یک کس دیگه این نسبت بتیم این خودش مخالفت با لا اله الا الله است بناهن انسان مسلمان میگه لا الهن نیست هیچ کسی قابل عبادت نیست هیچ کسی قابل سجده کردن نیست هیچ کسی قابلیت رکوع کردن را داشته باشه که ما در مقابل رکوب بکنیم نیست هیچ کسی که ما از او کمک بخوایم نیست هیچ کسی که مشکلات مره در وقتی که مریض هستم دست دفتی از او بلند بکنم نیست هیچ کسی که ما بر از او قربانی بکنم نیست هیچ کسی که ما از او استعانت بخوایم و او را مشکل کجای خود قرار بدم الا الله بغیر ذات الله جل ج جل. این مفهوم خلاصی مفهوم کلمه لا اله الا الله هست پس اگر ما میخواییم که به هدفی هدف که لا اله الا الله بر ما هدف اساسی است و خدای عزواجل ایده بر ما دین کرده به هدف برسیم از کدام را از کدام طریقه از کدام وسیله استفاده بکنیم ما میخواییم که از کابل برم به هرات از تایره استفاده کنم از موتر استفاده بکنم از بایسکل استفاده بکنم کدام وسیله درست است بس وقتی که ما میخواییم به با... لا اله الا الله که هدف اساسی از برسیم از کدام را به اینجا بریم من مادرم مادر من قبول بکنم گپ پدر قبول بکنم گف پدر کلان و یا مادر کلان قبول بکنم گف ملک و خان منطقه را قبول بکنم گپ اشخاص عالم و به علم قبول بکنم و یا ای که کسی هست که خدای عزوجل او را بر من معرفی کرده که من او را باید رهبر خود بگیم جزء دوم کلمه است که میگیم که محمد رسول الله محمد رسول خداست مبلغ خداست بنا ان موتو راهی را نمیتانیم که به توحید خدا برسانیم بغیر زی که ما مطابق سیرت عملی و نظری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما چی درس داد؟ چی گفت؟ خدا در مورد پیغمبر چی میگه؟ اول خداوند میگه که این قل ای محمد قل بگو بر از مردمی که تو در مقابل از قرار داری امکنتم تو تحبون الله اگر شما الله دوست دارین فرمو فرمول برطان میده الله دوست داری؟ بله میخوایی که الله ترا دوست داشته باشه؟ بله چی کنم؟ فرمول قرآنی برنمادرت ما میتک این کنتم تو حب الله فت اگر شما الله دوست دارین مطابقت مرا بکنین، یحباب کم الله باز الله شما را دوست داشته باشه. بناآن خداوند گفته که اگر خدا را دوست دارین و اگر میخواین که خدا شما را دوست داشته باشه، در هر دو صورتش باید مطابقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکنین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمد بر ما گفت که ترکتو فیکم امرهنی دو چیز در بین شما تر کردم لن تظلوا ما تمسکتم بهما شما گمراه نمیشین تا وقتی که او دو چیز ماکم کم بگیرین از این دو چیز استفاده بکنین چی از پیغمبر خدا گفت کتاب الله و سنتی او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کتاب خداست و سنت صحیح ما هست احادیثی که اور علما گفتند که این صحیح است متخصصین گفتند این صحیح است بناا کتاب خدا که دروک از بز زدن نمیتونن و سنت صحیح پیغمبر صلی الله علیه و وسلم که علما گفتند که عن فلان اینان فلان فلان و صحح البخاری و صححه مسلم و صح که فلان احادیس صحیحه است بنائن ای دین عزیز با نازل شدن آیته قرآن که الیوم اكملت لکم دینکم تمام شد کامل شد اگر یک کسی بگه ما کامپیوتر دارم، کامپیوترم 200 گیگابایت دارم، 200 گیگابایتی دین با نازل شدن اینمی آیه قرآن تکمیل شد. دیگه در دین کسی نه چیز را زیاد کرده میتونه و نه کسی از دین چیز را کم کرده میتونه. ها، اگر مومی کنیم که یک فایل دیگره در اینج پیست بکنیم، مجبور هستیم که یک فایل دین را دلیت بکنیم. یک حکم خدا را، یک حکم پیغمبر را حذف بکنیم، ایواز ازو بیم یک رواج دیگه در غیر از این دین تکیه نامی پذیرم. انشالله. این وقتی که ای قاید اساسی دین شد ما فهمیدیم که دین اسلام تکمیل است. ما فهمیدیم که هیچ کسی به غیر از پیغمبر خدا که بهتر نیست به چه خدا. ولکلهم فی رسول الله اصوات حسنة لمن کان یارجل الله والیوم الآخر. اگر تو خدا را میخویی، اگر تو به روز قیامت ایمان داری، پس رهبرت، اصویت. الگو کیه بگردنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردنی به نهان مسلمان زیادت نداره که باید من رحبرم فلانیست ما فلانی شخص فرستش میگنم تو چطور تو قرآن شناسست دیگه خدا برات میگه که الگو در زندگی تو رسول خداست و تو کسی دیگه اختیار میکنی پس اینال وقتی که رسول خدا رحبر ماست رسول خدا اساس زندگی ماست که ما خدا بر ما او را معرفی کردن نیم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسان میکنیم که ای پیغمبر خدا ما در افغانستان ما در ایران ما در آذربایجان، ما در تاجکستان اینجا بعضی از محافل و مجالس است به نام نوروز و به نام فلانی و به نام بالا کردن و به نام زیارت رفتن و به نام فلانی آیا ای های پیغمبر خدا؟ با عقیده اسلامی با کتاب خدا و سنت پیغمبر خدا تصادم میکنه یا موافقت داره که ما ایره بگیریم اگر خوب است باید ما بریم اگر خراب است پس پیغمبر خدا باید بر ما نشان بده به نهان عزیز این این مجالسه که مثلا در نوروز دایر میشه لباس جدید میپوشی کالای خوبش میپوشی اف میوجور میکنی غذای خواهی پخته میکنی مرغ خروس سفید علال میکنی سبزی چلاو پخته میکنی خب اید یعنی چی؟ اید یعنی چی؟ خب اید یعنی کارا کلش در اید میشه ایرمی خوشی ها در اید میشه اید از این دو قسم از برادر عزیز عید مکانیست و عید زمانی هست اصلا کلمه عید از عاده یعود و عودت که یک چیزی که دوباره عودت میکنه و برمیگرده یا در زمان است که پارسال اینی روز بود این روز باز آمد پارسال یفته ای بود این باز آمد و یا مکانی است که مردم در اینه این مکان رفت و آمد میکنن اینجا ما عیدهای مشروع داریم از نگاه زمانی و عیدهای نامشروع داریم ایده که او را رسول خدا گفته که درست است ایده مشروع است ایده که رسول خدا او را رد کردن نارواه است ایده که پیغمبر خدا او را محول نگرفتن رد است اگر مسلمان هستی یک کسی میگه درکات نماز بخوان پیغمبر خدا ای درکات نماز خوانده ولی؟ نیستیم من وادی که افته برای یک دروکات نماز میخونم نماز بد اون من نماز نخوانم؟ وبار از نماز ب میکنین عزیز، نماز خوب چیز است. لکن نماز وقت خدا داره دو وقتی آفتاب برامد خو نماز است که تو دوواده آفتاب برامده خوفتتاب پرستا نماز میخوااندن پیفند برگن نخواند ده و نخوانم گفته نه, نه نخوان و این نماز ب نه نماز خوب چیزست لكن نماز خود تقسیم اوقات داره قات داردگه و توخ که تو هر چیز که در وقتدل چود بگونی. به نهر اید زمان زمانی بر ما دو اید پیغمبر صلی الله علیه سلام معریفی کرده که اید قربان است و اید رمضان است ده اید غسل کردنش سنت ثواب داره ده دا ها مثلا دفتن و مسجد نماز ایده خواندن ثواب داره د دا ای روز لباس خوب پوشیدن ثواب داره د دا ای روز با دوستای خود داغوش گرفتن ثواب داره ده دا روز اگر انسان ای رو تخصیص می و رخصتی میکنه و در این خوشی می این ای پیغمبر خدا اجازه دادن بنان نان ما مسلمان ها هست اید ما مسلمان ها هست های نامشرو هم هست که در دیگه ادیان است یک کسی میگه خب آل ایدهای دیگرا که اگر ما او رو تجلیل کنیم چی پرابلم داره؟ چی مشکل داره؟ ما مثلا میرم در ایدهای دیگرا در کریسمس میرم، روز نوروز رو تجلیل میکنم ایره میکنم او را میکنم چی مشکل داره داری برشان میگن علمه اسلام که برادر است. ایست اید و رخصتی که از تعلق به عقیده داره اگر شما کسایی که انگلیسی رو می فهمن از اونها پرسان کنید باید برادر عزیز مثلا روز شنبه رو یهودی ها حال دی میگن حال دی نسرانی ها روز یک شنبه حال دی میگن و میگن برای مسلمان ها روز جمعه حال است چی مانه حال ده میگه هولی. مقدس دی روزه میگه یعنی روز مقدس بنا انگور کسایی که میگه هالویدی یعنی رخصت انگلیسی رو نمیفهمه در حالی که هالویدی معنای اصلیش روز مقدس است ها یک روز رو تجریل میکنن به نام روز مقدس روز کریسمس پیشون مقدس است پس اگر یک مسلمان در روز کریسمس برای این مسیحی یک دستگل گل میتن، او اون رو تحیت در عقیدش که تو کار خوب کردی اون میگه عیسا بچی خداست آب بفرموین این گلایی عیسا را مام خوشدارم کرد و چی خدا باشه یهودی ها روز شنبه رخصتی میگیرن روز شنبه پیشون مقدس است مسیحی ها روز یک شنبه رخصتی میگیرن پیشش مقدس است پس مسلمانانی که شنبه یک شنبه رخصتی بگیره هالویدی بزازه معلوم است که با فرهنگ دیگران متاثر است و عقیده دیگرارا سر خود تایید میکنه ده غیر ازو پیش مسلمانا روز مقدس روز جمعه است ما جمع داریم ما دا روز عبادت ها داریم در دا این روز علما میگن که روز روز جمعه ای ثواب ها را داره این چیز داره برای ما مقدس است ایدهای عصر جاهلیت مثلا بعضی از ایدها در عصر جاهلیت بود نوروز در زمان آتش پرستا جمشید یک پاچا بود پیش از او پاچا دیگی بود وقتی او پاچا از بین بینب گفتن که او خراب آدم بود خوب آتش رو پرستش نمیکرد جمشید آمد خوب آتش پرستی رو نشر کرد زیادتون مردم خوش داشن که بسیار آتش پرست خوب است آمدن از را گفتن ایروز نوست امروز ایروز جمشید پادشاه شدن بناهن ایروز روز مقدس قرار دادن و ایره هر سال ایره محفل می گرفتن حالا ما بخیزیم از پادشاه شدن جمشید اگه روز ما هم مقدس حساب بکنیم، آیه پیغمبر خدا گفت که نو روز مقدس است، آیا صحابه کرام ایکاره کردن، آیا آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اِکراه کردن، وقتی که نکردند کل بدعت ضلاله، هر چیزی که نوآوری در دین شوه، چیزی که خدا نگفته مقدس است، پیغمبر خدا نگفته مقدس است، قدسیت نداره، و اگر کس میگه این مقدس است، ده این ثواب داره، فلانی داره، بدعت نوآوری یک فایل جدیدی رو داخل کرد، و ای از دیدگاه عقیده‌ی اهل سنت و جماعه است و کلو بدعت دلاله هر نواوری در دین گمراهی هست بعضی روزها هست فرهنگ های دیگر ها فرهنگ های دیگر از هست روز زن روز مادر روز طفل روز فلانی چند روز پیش داره از رادیوها ها من را تقاضا کرده یک خانم بود از حقوق زن و از حقوق بشر دفاع میکرد نام انارکلی هنریار رو چطورکایی گفتم بیشار روز زن توصیف میکرد مفتوم امی هم از سادگی و آجیزی و بیچارگی زن است که مردا بازی داره چون 364 روز روز مرد گریست یک یعنی روز روز زن ساختن. آقا ما یک کسی که به روز مرد تاخیر میکنه من گفتم بعد میکنی یک روز روز مرد چی گره یک روزه ده وسه یک سال یک روز روز مرد کل روزا روزه است کل شب خوشا و ها کل روزا روز خداست ما بنده خداستم همیشه باید روزه باشه چرا روز زن مثلا در غرب است چرا روز مادر در غرب است چرا روز پدر در غرب است چرا روز طفل در غرب است به خاطر که در غرب وضع شکستگی در فامیل صورت گرفته چرا بچه جوان وقتی که جوان شد یا از خانه خودش میره یا پدر خود بیین متر میشن راستن میبری یا کمپیر خانه پدر جان تو پیر شدی برو کمپیر خانه اونجا زندگی مادرجان تو کمپیر شدی به درد ما نمیخوری، برو در کمپیر خانه وقتی که مادر و پدر در کمپیر خانه روان کرد ای به شارخ و از غم از غ از به خاطر که میگه دلش نقفر یک روز ب نام روز مادر ساختن که باز اون اگ استگال پیشش ببره اما ما مسلمان ها چه می داریم به روز مادر چون همیشه مادر ما در پالوی ما 24 سات مادر خود احترام می اگر مادر و پدر ما احترام می کنیم خدای ازوجل گفتن ولا تقل ما افن در مقابل مادر و پدرت عف نگو احترام بگو وقت که دله ما جناح ذل بالها بالهای ذل یک عالم میگه میگه مرقا که جنگ میکنن یک دو تا خرووسا وقتی که بسیار مانده شد باز بالای خودم کشال کشال میکره یارو یعنی من تسلیم هستم میگه میگه تو دم مقابل مادر پدر مثل اینه میواره اما تو بالای تمیشه است پدر جان پدر جان هر چی که گفتی سر چشه پس چيزونه است که ما روز پدر رو روز مادر داشته باشیم اطفال بدون لاوارث و بی پدر و بی مادر هستن میگه برای همین یک روز بتیم. باز پدرها برن برازی ها <تصفح> یکان چیز برن برازی, برازی بر یک, یک دستگل ببرن که طفل بی مادر و باز هم در زندگی چیز نشه متأثر نشه خب اول از دیدگاه شریعت اسلامی از دیدگاه شریعت اسلامی مسجد مقدس است بله مقدس است آیا ما از دیدگاه اسلام بودیجی داریم شما اگر در یک جای کار میکنین رئیس بردان میگه که این پیسه زیاده است لکن به یه چیز به چیز به, چیز, به چیز مصرف کن در اسلام آیا به خاطر مسجد ما کدام چیز داریم؟ که من میرم از اینجا در مسجد حیرات جامعه حیرات خوب مسجد است، نماز میخوانم تکیت تیاره میگیرم دو طرف مصرف میکنم. پیغمبر صلی الله علیه و آله لو تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد شما حق ندارین که به مسجد ها هم پیسہ مسرف مگر به سه مسجد المسجد الحرام و المسجد و مسجد النبی مسجد الحرام که بیت الله شریف است پیسہ مسرف میکنین تیکت تیاره میگیرید تا در مسجد الحرام نماز بخونید درست است مسجد اقصا بیت المقدس اونجا اگر پیسه مصرف میکنی بریده اونجا نماز بخانی در صورتی که خداوند رو آزاد بساز عزیز سهیونستان درست است مسجد نبی صلی الله علیه وسلم سلم میری که مبروم اونجا نماز بخانم حاجی ها میرن چون نماز رو ای مسجد میخونم آه این درست است اما دیگه مزجید ها گفتا لا درش در حاله. زمین مزیت است بخوان در این مزیت خیر بخوان چند روز که می‌دید مزیت هیران چرا پای تصرف مصرف اگر بسیار متدای اون دین و خدا پرستستی به امسایه سایه و از خود گیت کسایی نیست که در زمستان از گشنگی نان نمیرد آیا مدرسه نیست که دو مدرسه کتاب و کتابچه و قلم ضرورت باشه تو که کادر ایماندار هستی مدرسه کتاب خوداره تکیه کو آیا یک سرچوب برای مدرسه اوردی آیا یک دستیر برنش خریداری کدیم اونجا رفتی؟ میگه هندوستارایی خدای ناراض بسیاری وقتا هندوی بشارم مانده دویده دویده میرسد در جوی شیر در جوی شیر گلاس گلاس شیر انداخته میره بلاخره جوی او شد. شیر شد امی فلسفه جوی شیر انداخته هندوها زیاد به او شیر انداخته میرفتن و بلاخره یه جوی شیر خدا دکه سفید میشد میرفتن جوی شی در جوی چی بیکنی که انداخته میری؟ او شکرش از گشنگی میمارد این درفتیم گوه آمد توی در روی سرک میکرده و مردم چی کمه آجا تختیب پشتش چست میده چی گرفت؟ که اونوی کاته یه تو ماهه من قفتم باب بکاو گوه نمیخواه که مادر از من قفتم گوه نرشه خوه بخوه بخوه پدر از خیر از خیر. از گوش نگی میمونید دین از دین خب دین چیز که باید دو اقل انسان متاثر نشه کرامت انسانی زیر پای نشه تو برای گو کرامت میکنی و خدا را فراموش میکنی دین پیغمبره آمدن که انسان بر عزت بتن کرامت بتن ولقد کرم نابنی آدم برای انسان کرامت دادیم نهی که تو انسان بخیست پیش حیوان سر سجدک و بروسه دزیر دیگ سخیجان آی دیگ است تو بسیار کرامت داره خلاص آین پرستی بروسه چوب کو و بروسه دیوالارم خلاص کرامت انسانی خلاص شد کرامت با چوب و سنگ و فلانی و فلانی شد خدای عزوجل میگه ولقد کرمناه بنیادم او انسان کرامت تو حتی از ملائکه ها برتر است کرامت تو حتی از جنیا برتر است کرامت تو از بسیاری مخلوقات چرا کرامت تزیر پای میکنی حدیث شریفی که هست میگه جاء اراجمن الی النبی صلی الله علیه و سلم برادرای عزیز اگر مریض اش پیش دکتر غیر متخصص بری 3 کیلو دوا میدید جور نمیشی نرو پیش غیر متخصص پیش دکتر متخصص برو اگر پیش ویترنر رفت یک نفر رفت پیش ویترنر دکتر بیچاره چیش درد میکنه برش دوا داد کور شد گف خدا تو خراب کرد چشمه ما کور کردی دوای غلط چشمت دوای چشم برش داده بود این چشم کور شد گفت تو اگه گاو نمی بودی پیش ماشی می نکدیم می مجبور بودم فکر کردم گوزی پر توی دوای چشم دادم کور جوده دیگه ملامت خودت هستی ما خود از سر لوحیم نام شکر بودم که بودم بنام دین اگر از عالمی که قرآن شناس است عالمی که حدیث بیان میکنه دین اسلام دین سند است عالم از یخنش بگی بگو این آیت خاندی در کجای قرآن است اینی حدیث خاندی در کجا این حدیث ذکر شده در کدام صفحه این حدیث است در کدام کتاب است این حدیث حدیث صحیح است و عالمه که برات حدیث از سند نداد گپ از رو نگی به شو عالم متخصص برو قرآن شناس برو که برات قرآن درس بده تا تو حقیقت دینت درک کنی ولی سید من پدرم دکتر بود مام دکتر هستم پدر نوح علیه السلام نوح بود چیش کافر بود نه پدرش نو بود مفش بچهش ولو که در سر کوبالا میشن ولو که قرقام شدن بچه فیغمبر بود بچه آه دینام به واسطه و واسطوازی او به پدر و پدر کلانی این دینام ارسی هست نیست باید بعد با متخصص بینید پیغمبر خدا چی میگه؟ لما جا رجل الى النبی صلی اللہ علیه و سلم یک کسی آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یسالو, یسالو بی انه نذره ان حره ابلن <تصفح> یک کسی مدید پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ما میخوایم می که یک منطقه بود بی بوانته بوانه نام یک منطقه بود گفم میخواین سایه در اینی باوانه یک دانشجو تا نظر به دربار خداوند امی که زر حاکم کنیم پایگاه مرز را کنیم دقت پایگاه بره. فقّال له نبی صلی الله عليه و سلم هلکان فی هوا در این منطقی باوانه در قدیم زمان کدام جای بود بود چون در آن زمانیه بعضی منطقه‌ها بطورا مانده بدن لاد دیگر جای بود من هد دگر جای بود گف در اینج کد اینج ثابت کدام بود بود اتنشه کی ای بره اونجا زبحه بردم باز بره اون نشکن ییبرم اونجا ذب حکر کنم بگم باز باید که ایش جای مبتق آن پیغمبر برق برو ذب حکو فقلا دوتنی پایگم اصلا میاد اون باوانه ایش بات مط نبود دو فلکان سیها عیدون من عیاده هم آیا گفت در اینجا کدام اید از ایدهای جاهلیت بود که اینجا جمع میشن و خوشی میکردن ها فقلا دوتنی ایدگاهی شنام نبود قاله فا اوفی به نظری که گفرو نظرت اینال اداق به انسان مسلمان از این حدیث پیغمبر چی درس میگیره درس میگیرن در جایی که جای بطهای جاهلیت بوده در اونجا عبادت نکن. ایده که بنزد غیر مسلمان ها عید بوده چون به عقیده شان تعلق داره این ایناله من در طول یک هفته به ها کتاب علما را هر کدامشان مطالعه کردم حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را چه قسم ترجمه میکنم کنم روا و ابن مالک میگرا روایت کرده حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه قال نبی صلی الله علیه و سلم میگه وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد به مدینه و وله اهل المدینه یومان یلعبونه فیه ما دید که مردم مدینه دو روز دارن روزای ایدشان است دهی ساعتیری میکنن کنن خوشی می کنن میوه توزی می کنن, اه, اه, کیک می کنن کلچه که مردم در اید می کنن خانه یکی دیگه خود می این در وقت جاهلیت بود پیغمبست سلام چی گفت بر از اینا گفت که قد الله به به همه خیرم من همه خداوند مطال به داره ای دروز دروز دگیره بر شما داره که از ای دروز که پیشتر است در فرهنگ اسلام است در عقیده اسلامی است یا النحر و یوم الفطر دروز است که یک ایده قربان است و یکی ایده فطر است رواه احمد و ابو داود خب وقتی که آمدید این حدیث از پیش سطحا باور بکنید از سطحا عالم اهل سنت و الجماعت ما برادارهای عزیز بکلگی احترام داریم به هر انواطن خود احترام داریم احترام از این از اینه نمیته که یک چیزی که در اقیدی ما اساس نداره به خاطر که تو خوشحال شوی ما تایید بکنم من میگم که این چیز ناروا هست به ناروقتی که نارواه هست ما میگیم نارواه هست تو که میگینی پیشمروا هست تو میفهمی و کارت اما ما گپ ما بره این مردمایی که اهل سنت هستن قرآن و سنت اساس زندگی خود قرار میدن برای دی میگیم که ای روزی که در سابق بود یکیش مهرجان نام داشت یکیش نوروز نام داشت پیغمبر خدا ایده روز رد کرد و گفت به وزید ایدو روز اید دو اید ای ای که اسلامی هست روز اید قربان روز ایده فطر است تمام علمه رو وقتی که تفاصیل شانند من امجا در کمپیوتر دیدم می رفتم دیدم می رفتم اونجا یک کتابخانه است که کشور مسلمان ها و جور کردن تقریبا 35 40 هزار کتاب داره وقتی که اینمی حدیث شریف ازعر عالمه که برسان کردیم این میگه بود کل همه علما میگفتن که نوروز عید مجوسی هاست و دین مجوسی های آتش پرست تعلق میگیره مسلمان در این روز نباید کالای نو بپوشه مسلمان نباید این روز تجلیل بکنه مسلمان این روز باید به افتخار نباید بکنه جزء دین اسلام نیست در اسلام خودم چیز نداره اگر عادی مثل یک روز دیگه واره کالایی که دیگه روزا می پوشی نان که دیگه روزا می کری این اما اینکه که تو خاطر که این روز روز متبرک از کار رمی کنی این که گناه هست به ایواز ثواب تو در دا گناه داخل می شی. امام بی از عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنند میگلاتد خلوا علی المشرکین فی كنائسهم یوم عیدهم فان السخط تنزل علیهم حضرت امام بی از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که در ای روز روزی که عید غیر مسلمان ها باشه مثلا روز کریسمس دارن یا مثلا مجوسی ها روز مخصوص دارن یا آتش پرست ها روز مخصوص دارن یا بود پرست ها روز مخصوص دارن در ایده از اونها تو هم امراشان اشتراک نکن چون بالای از اینا غذب خدا نازل میشن اگر تو دو اون مجلس در سر تو هم غذب خدا نازل میشن حضرت امر ابن چی میگه میگه من بنا به بلاد ال و وضع نیروزهیم و مهرجانهیم و تشبه بهم حتی اموده خوشی رمه هم یا ملقیان میگه اگر کسی مثل ارمو عاجمه که در بعض کشورای عجمی گفت اونا چی میکنن نوروز یا مهرجانه تجلیل میکنن کسی که اینمی در زندگی خود امی کار میکنن در روز قیامت امراه از اونا حشر میشه زیر بیرق از حشر میشه و کجا بیرقشان والله و علم امام فتاوای از هر شریف مطالعه کرده که باش از هر شریف میشه یک فکر گفته باشه وا اجازه مسته دو ساز تقاضا میکنه به بریم چکر آمست از این ساید برو تا مزار شریف بریم صاحب دادال قصادی اونجا بیا بریمک دروس یک چند تا کس ات احمد زاهر و گلنار بیگم اون برد می‌گیریم خب ساعت تام تیر میشه و قصام میکنه و فلانی خان کوجا میره غاتمن سیاسرا و اولادا و دخترایش و من که اول رسید یک شب کم تاجیکی توجکیاست و دیگر روسای یک دونه دلنواز صاحب از امریکا آوردن وام مجمهی رخصه فالوی آیه این احترام شخصیت های اسلامی هست آیا حضرت علی که خانمش بی بی فاطمه زهرا توصیانه کرد که مرا در شو دفن کنین که عطا جسد من محرما نبینن جسد منم محرما نبینن این کارو نکنین ما خانم های خود میبریم در اینجا دخترای جوان خود اینجا میبریم و اونجا زنای رقاصه در ایدوس به نام حضرت علی میلیون ها پیدا میکنن نمیکنن شما ایلانا را بخانید ببینید که در این روزا اونجا چی حال است چی جنایت های بنام صحابه کرام صورت میگیرد که اگر اون صحابه باشه چشمایش دیریه میکنه و باز مایره ما یک چیز بگیر وانایی بسیار کار خوبست فتاوای از هر چی میگه علمای از هر شریف میگه فکل ما سواها وین الایدین بدعتن و منها ایدن نگروست میگه کلی ایدها و خوشیها و جشنهایی که بغیر از این که پیغمبر شده گفته گفتن این دیگرها کلش بدعت است اگر بگیده این ثواب هست ده گناه هست و از جمله از یا ای اینمین نوروز هست این فتواه از هرست فتواه هندیه چی میگن که از احناف هست و در بسیاری کساست امام صاحب اعظمه ننشناست که نامش چی بود امام اعظم سبنه می میفهمم که کی بود تمام گناه ها و بدی ها را نسبت میدن و دوستای خدا آیا عزت علی در روز قیامت کسانی که بنامه از ازو رقص تاجیکی ها را سائل میکنند به نام علی اونجا کانتات دائر میکنه در اونجا رقص میشه در اونجا زنا میشه در اونجا بهیایی میشه در اونجا اختلاف بین زنها و مردها هست آیا عزت علی از این راضی شد که بالای قبر مردم به و رقص بکنه آیا امام اعظم ایرامه می خواهد؟ بسیاری کساست که امام اعظم هم قرار میترد آیا ازت امام اعظم یا ازت امام علی یا صحابی صحابه کرام و راضی میشن که کسی بر از اینا سجده بکنه؟ کس وای که تو بر ما شفا پیغمبر خدا صحابی داشت از برای خدا، پیغمبر خدا صحابی داشت جلیل القدر، ازت عبدالله ابن ام مکتوم یک روز فقط پیغمبر یک چند نفر از مشرکین جمع کرده بود، امرا از آنها صحبت میکرد که حضرت عبدالله ابن ام مکتوم آمد پیغمبر صلی الله علیه و وسلم یک هنگ پیشانوی خود طرف از ترش کرد که من 24 سال در خدمت تو هستم دان که عالم 40 نفرم شده و, و وزیرها را جمع کردید اگر اینا را خداوند هدایت کنه این اینا بود من به پیغمبر خدا سوال دارم یک مشکل دارم پیغمبر یک هنگ پیشانی خود از طرف ترش کرد آیه قرآن نازل شد که ابس و تولا ان جاء اهل اعما وما يدرك لعله يزكا ای پیغمبر پیشانیت سورج صحابه چرا ترش کرده اینمی صحابی نابینا از چل وزیر و عضو پارلمان بی دینا کده برتریت داره. دارد پیغمبر خدا دوستش داشت محبت داشت عبد ابن مکتوم محمد میگه ای پیغمبر خدا من مسجد به نماز جماعت لکن چشم ما نابیناست نمیتون دیدن در راه خزنده‌ها از راه خراب است اجازه است که ما به نماز جماعت نبیایم پیغمبر خدا به گفت که صدای اذان همش گفت، ولی گفتم مسجد و جماعت بیام جوان چشمایم جور است نماز و خفتن مؤذن که حیا علی سوالا بیا به طرف نماز حیا علی فرا بیا به طرف استغاری اون دوها و برام میگه بیا به طرف های اون دوها تا که ترام اولادای تو و خواهر و مادر و تپل تا اون دو بسازن. امروز در افغانستان سفلو رو وقتی که بوی که دعا کو ایوازی که این قسم دعا کنه مثل اون دوها و دعا میکنن اگر خودت مسلمان هستی نواسه و کوا عزیتندو به بدین میشه. حیا علی و حیا علی فرار بر اولاد تیاد نمیگی و در روز در روز که اصحاب کرامه بر اجدار نمیتی اونجا میری بر از رخت نشان میگی اتفاقی تو در آینده چی خواهد از از از از از از از از از از از از از از از از از دل مؤمنین رووف رحم نبود بود پس چرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک روز یک دم نکد یک دست خلاکش نکد که چشمهای عزت عبدالله ابن امیم ام, ام توم جور شود اگر بکنیم میتانست نیفایی که من چشمی نابینا رو جور کنم میتانم جور نمیکنی. باز رووف رحیم نشد اگر نمیتانست باید بگوییم که اینما انا بشارم مثل کم بگو ای پیغمبر برزا من مثل شما ور بشر هستم در حدیث شریف دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که در حدیث شریف دیگه بود که اونجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته بود که لا تران قبر عیدن قبر مرا ایدانه سازین او مسلمان ها پیغمبر خدا از ما شما تقاضا میکنه که قبر مرا ایدگان ایدگاه نسازین در قبر ما اطرافش محفل نگیرین به خدای عزوجل میگفت که یا الله الله ملا تجل القبر بسجنن خدایا قبر مرا ملا تجل قبر و سنن قبر مرا بت نساز خدا سر یهود و نصارا شد که قبرهای پیغمبرهای خدا بود ساختن سجدگاه ساختن مسجد ساختن در قبر رکو میکردن در قبر سجده میکردن برادرای عزیز در دین معقولیت عقل یک نعمت بسیار بزرگ است خداوند بر انسان دادن و انسان باید دین را به اساس عقل بفامن نواسه حضرت بچه حضرت علی توتی جیگرش در کربلا شهید میشن از توشنگی میمارن آه مردم حسین ما در کربلا شهید شد توش نبود آه سیست توش نبود. بزن خدا. سیست عزت علی میتونست که در افغانستان نابینا را جور کنن مادر اونجا بر بچه خود یکی با به دو بنا میتونست بیشتر کمک گلون من کمک گلون من بچه یک دل سوز امام حسین در اونجا شهید میشن عزت علی در افغانستان از کرامات سخیجان کور کوربینا کی چی نمیخونم سراهم گلنار بیگم قمرگل کسایی که از قرآن و سنت خبر ندارن از بجاروک زیارتونه؟ چین که بابا که می قبول کی داستانونه اینی گپاره میخونم بر ازنا گپ هایی که در اونجا بوی شرک نه پیامبر خدا بچه نداشت شاهد شمشیره بر من بچه بتن پیغمبر خدا بچه جوان نداشت اگر پیغمبر خدا میتونست برای کس بچه در شده که از خانه میکشیدنش. ر غار اونجا خدا پ کرد در غار سبر و ما تاریخ میخوانیم لکن معکولانه رو نمیخوریم تحلیل نمی نمیکنیم فقط هم میکنیم و عمر جان بردیم و اوواکر بردی و فلانی جان اما نمیگه که اگر پیغمبر میتونست برای من بش ببد چرا خود یک بیزار همش رو جوان داد خوبمات قوی قوی که در مقابلش وقتی که ابو جهل و اب حقب و فلانی اود بگه بریم بشر خوب زدنشان کنیم. پیامبر نیم شهورا و عزت امیر المومنین علی کرام الله واچو میره دوست دا داری زیفام میکنه. از خاطر ما اول باید سر اعتقادات خود کار بکنیم. در روز قیامت خدای عزّ و جلال حضرت عیسی عليه السلام می استاد میکنه. یا عیسی ابن مريم. صدق. آمته کلته بالناس. قرآن است. عیسی ابن مريم تو گفتی برای از این مردم های اروپا فرانسه و امریکا و ایتالیا که تخوزونی و امی آیا شما گفتین که مرن و موادر مرن اله حیر من دون الله بگیرین سرکنین چرا از قلد دی آیت معقولونه انسان فکر رو کنید. خدا خدای عزیز جل مفاسرین میگن حضرت عیسی علیه السلام استرات میکنه کل مسیحی ها و کل مردمایی که حضرت عیسی رو مجسمه آوردن در کلیسا چیزس کرایس به نام از تلویزیون ها ساختن چیزس کرایس استاد میکنه براش من که عیسی مسیح اعظم تو گفتی برای مردم که اتخذونی و امی الها عین من الله تو گفتی حضرت عیسی علیه السلام میگه خدایم اگه من اجازه فراهم میکردم که تو میفهمیدی من ها گفتیم بغیر چیزی که تو آمریکا کردی که خدایی اگه را پرستش مید روی کل کسایی که حضرت ایسا را سجده می کنن و عبادت روی کلش سیاه بشن روی پاک جان پال پا بر بندکیت و كلش، كلش روی کلش رویشان سیاه می شکت فیروائی به می شکل هر کسی که یک انسان را پرستش میکنه در روز قیامت استادش میکنه آیاتو آیا تو گفتی حضرت علی؟ بر از این مردم که بیاین در مزار شریف مردم بازنده که من چشمایتان را جور کنم دین بر اما سجده کنین دین بر ما روکو بکنین دین در مسجد نرین جماعت نخوانین دین از زیارت اونجا سجده بکنین تو گفتی حضرت علی صحیح خدایا من موحد بودم من پیره به رسول الله بودم من سجده به الله میکردم من بر الله میکردم بر اما الله چشم داده بود قدرت بر اما الله داده بود الله مرا زنده کرده بود. الله مرا میان خدایا تو مرا عشر کردی که گپ رو میذا مع از بزار هست هستم خدایا نه بزار هستم چرا خدا؟ کاری بکنیم چرا اقل کند کاری که بارارت با شیمانی که باززار رو جوه که یا تنیکن کو تو را کاش که خدایا من خاک می بودم. او عالم که تو که برو در زیارت سیجا و رو کم بکن میری از که عالم در خدا شوی چرا ایکار کردی و او عالم در زنجیرها تو داده شده دا به طرف دوزخ کشانده میشه چون عالم وزیفه است که مردم ارتباط که با مستحکم بزاده او مردم خدایتان یکیست او مردم شفاعت خدا او نابینا کشمت را خدایی از بینا او انسان و زن و مرد هیچ کسی نمیتونه تو دختر یا بچه بته، محی خداست زنده‌کننده خداست الله است ممید الله است شفا الله است هیچ کسی نمیتونه پیغمبر برات بچه دادن نمیتونه صحابه برات بچه و دختر دادانه نمیتونه لا اله الا الله را در قلب جای بده ماسی الله را از قلبت بکش اگر تو محبت اونها را داری محبت پیغمبر این که تو مطابقت راه پیغمبر را بکنی بخوان در کل کتاب های پیغمبر که آیا کدام روز پیغمبر با کدام پیغمبر دیگه سجده کردند با کدام کس دیگری رکوع کردند آیا اصحاب کرام به قبر پیغمبر رکوع و سجده کردند که امروز ما او تو بکریم. او مردم بترتین از خدا نکنین این ملت بیچاره را این ملت فقیره این ملت مظلومه را که از یک طرف روزها اینا را. بسیار شهید ساخت و برباد ساخت امروز آمریکایا و صهیونیستای قاتل بر از اینا مؤسسات کفری را جور میکنه و اینا را مسیحی میسازن در هر منطقه میبرن شما از برای خدا این ملت بیچاره و بی‌سواد من حيث عالم دین من حيث طرف دارای خدا به گمراهی و غلطی نبرین بلیاز خدا شما علمای اسلام قرآن را بر مردم درس بتین کتاب خدا را درس بدین نجات در قرآن است نجات در سنت پیغمبر خداست نجات در توغ پرستی نیست نجات در قبر پرستی نیست نجات در نهروز نیست نجات در بورد پرستی نیست نجات در میخ زدن نیست بفهمانند زن‌های بیچاره تونا بگو این بگوین که کفتر و شاهد شمشیره کتر زنده و مرده کرده نمیتونه کفتر مائی ها کس زنده و مرده کرده نمیتونه تو مخلوق مکرم هستی تو باعزت هستی تو مسلمان خداون عزت داده تو مسلمان خلیفه خدا در روی زمین هستی خدا تو را خلیفه خود دروی زمین ساخته که حکم خدا را بالای خدا بالای فامیل و بالای مردم تدبیق بکنی اینی حسرهای جید صبح تا این ختم بکنیم سبحانه ربی ربی حضرت مایسیفون و سلام علی المرسلین و لله رب العالمین پروردگار بر, بر ما توفیق بتی که چیزی که رضایت تو اون بکنیم خدایا تو خدای هستی الهی تو مشکل کشای ما هستی اما یوجیب المضطر ادادا خدایا تو میگی که اگر یک نفر در حالت استرالی قرار داشته باشه کی می تانه که مشکل ادود رفع بکنن الهی تو مشکل ما را رفع میکنی خدایا تو مشکل ما را رفع بکنی الهی مشکل کشای ما تو هستی الهی آجت روای ما تو هستی الهی ما مسلمان آدار و این وقت نماز خود میدیم که ایاکن عبود و ایاکن از خدایا خدای خاص تو را عبادت میکنیم و خدای خاص از تو کمک میخواهیم الهی تو بر ما اولاد صالح نصیب بکنیم الهی تو بر ما عقیده درست نصیب بکنی الهی علمای که عقیقتا قرآن سنت تطبیق میکنه خدای بر از اونا توفیق بیشتر تو نصیب بکنی الهی هرکسی که ب ضد اسلام به زده توحید به زده عقیده اسلامی حرکت ولو که بسیار بسور مولوی بزرگ باشه خدایا تو کنی که ملت تو میکنن پروردگارا تو روزی بهنده ما هستی و رزق و کن فسمار روزی ما را رو خدایا تو بر الهی ما مثل غربی ها و به اقتصاد ایمان ناوردیم به تو ایمان آوردیم خدایا تو رزق حلال بر ما نصیب بکنی الهی زنده کننده و میراننده تو هستی خدایا تو زندگی ما را با داشته باشی و وقتی که پروردگارا می با آخرین جمله که در زبان و مشه؟ كلمة لا إله إلا الله محمد